شنوندگان عزیز توجه فرمایید شنوندگان عزیز توجه فرمایید با خوشحالی و سرفرازی به اطلاع می رسامیم هوای امروز و همه و 1394 در اکثر نقاط کشور پاک بوده قابل تنفس می باشد. پس بش ای دارنده های ریهای مقاوم و ضد دود ای قهرمانان عرصه تنفس و ای ریزگرد ستیزن این هوای پاکیزه اکنون حق مسلم شماست تا به های قهرمانتان نشان دهید که هوای پاکیزه نیز وجود دارد اینک نفس بکشید و آنودگی های دیروز و دیروزها را فراموش کنید که از فردا و فرداها کسی خبر ندارد این پیروزی بر یک هایی که ها نرسی تنفس سرب و گوگرد و ریزگرد مبارک با